سلام و عدب خدمت شنوان کانال تلگرامی هزار افثان داستانهای افسانهای صوتی با کتاب افثانه های اوکراین در خدمتون هستم داستانی رو از این کتاب بهتون تقدیم میکنم از بخش دوم قصه های سحر و جادو و اسم داستانمون هست چوپان کوچولو به نام خدا روزی روزگاری چوپان کوچولوی تو روستایی زندگی میکن تنها چیزی که از دوران کودکی آموخته بود و به خوبی می دونست از گوسفندان و به چرا بردن و تو بهترین مغزارها و کوهستانها بود. روزی که گوسفنداش رو در جایی سرسبز و زیبا به چرا برده بود ناگهان تخت سنگ بسیار بزرگی به وزن 20 سنگ معمولی از آسمون به زمین افتاد و از شدت صدای افتادنش زمین به لرز در اومد. چوپان کچولو تخت سنگ رو با کمربندی چرمین بست و اون رو گردون دو گردون و به سمت آسمان پرتاب کرد. بعد تمام روز رو خوابید و وقتی از خواب بیدار شد تخت سنگ با صدای مهیب و گوش خراش به زمین افتاد و به عمق زمین فرو رفت. هیچ کس جز چوپان کچولو نمیتونست اون رو تکون بده. مادرش همیشه با اون جر و بحث میکرد که نباید سنگ عظیم رو این سوی و آن سوی ببره چرا که این کار برای سرامتش ضرر داره. اما اون توجهی به حرف مادرش نمیکرد و سنگ رو این طرف و اون طرف میقلطاند و میبرد. روزی اجده های تو اون سرزمین پیدا شد. کاخی بزرگ برای خودش ساخت و از سزار خواست که دخترش رو به اون بده. سزار که از قدرت می ترسید در تمام سرزمین به جستجوی جوی پهلمانی پرداخت که بتونه اجدهها رو شکست بده. و گرنه مجبور میشد دختر نازنینش رو به اجدها بده. خبر همه جا پیچی، هیچکس جرعت نداشت دا طلب مبارزه با اجدها بشه. به چوپان کوچولو که همه جا میگشت و خودش رو هم آورد اجدهها معرفی می کرد. سزار خبردار شد و اون رو به دربار دعوت کرد و پرسید تو با این قد دو قامت و کوتاهت چگونه میتونی با اجدهای های سهگیم به جنگی؟ چوپان کچولو جواب داد ظاهر افراد مهم نیست کافی دو گردان سرباز به من بسپاری یه گردان خاننده و یه گردان نوازنده تا من به نبرد اجده برم سزار قبول کرد و اون رو با دو گردن خاننده و نوازنده راهی جنگ کرد و از جدیت و شجاعتش به شگفت اومد. چوپان کوچولو با سپاه خودش رفت و رفت تا به قصر اجدهها رسید. برشگرش توصیه کرد که همونجا بیستن و منتظر بمونند تا چوبان به جنگ بره و اگر از درون قصر دود به هوا بلند شد بدونن که چوبان پیروز شده و اجدهها رو کشته. اگر آتش به هوا بلند شد بدونن که اژدهها پیروز شده چوپان به داخل قصد رفت و اژدهها دهان گشود و آتشی فراوان به سمت اون پاشید اما آتش آسیبی به چوپان نرسوند اجژدها چوپان رو مسخره کرد و گفت بهتر برگردی و دیگه که بزرگتر شدی به جنگ من بیاید. چوپان گفت من به قدر کافی بزرگ شده اما آماده ای نبرد با تو هم. اجده ها شمشیر بلند خودش رو برداشت و با اون به دست چوپان زد. اما ناباورانه دید شمشیرش تکه تکه شده. چوپان خندید و گفت الان نوبت منه تا راه و رسم جنگ رو به تو بیاموزم. اون وقت با شلاق خودش که تخت سنگ همیشگیش رو به اون بسته بود چنان بر سر اژهدا کوبید که دود شد و به هوا رفت. لشکر چوپان که از بیرون قصر دود رو دیدن، به خوندن رو نواختن پرداختن و هل هلی شادی همه جا رو فرا گرفت. جشن و پایکوبی برپا شد و چوپان کوچولو با دختر سزار ازدواج کرد و های سال در خوشی و شادمانی